قصر پنجم تسلی بخشی قلب شکسته بخش اول درباره باره قمهای ناشی از عشق او شاید بهترین فیلسوف باشد 1788 ارتور شپنهاور در دانت سیش متولد می شود سالها بعد با حسرت و تأصف به این رویداد. میتوانیم زندگی خود را رویدادی بدانیم که به ترزی بیفایده و ناراحت کننده خواب سعادتمندانه نیستی را بر هم میزنند. هستی بشری باید نوعی اشتباه باشد. او سریحاً میگوید می, می توانوان درباره آن گفت: امروز بد است و هر روز بدتر خواهد شد تا اینکه بدترین اتفاق رخ دهد. پدر شپناور، هاینریش، تاجری ثروتمند، و مادرش، یوهانا، زنی اهل مهمانی و گیج که بیست سال از شوهرش کوچکتر است، چندان علاقی به پسرشان ندارند. پسری که به یکی از بزرگترین بدبینان تاریخ فلسفه بدل می شود. حتی وقتی کودکی شش ساله بودم، یک بار والدینم پس از بازگشت از پیاده روی شبانه، مرا دوچار یعسی امیغ یافتند. 1803 تا... هزار پس از خودکشی احتمالی پدرش او را در آبراهی کنار انبار خانوادگی شناور می آبند. هفده 17 ساله ثروتی را به ارث می برد که می‌تواند تا پایان عمر از آن بهرمن شود. تفکر به هیچ وجه مایه آسایش خاطر نیست. بعدها به یاد می‌آورد، در 17 سالگی بدون هیچ گونه تحصیلات رسمی مناسب توجه هم به فلاکت زندگی جلب شد. درست مثل بودا که در جوانی به بیماری، پیری و مرگ پی برد. حقیقت این بود که امکان نداشته این جهان کار موجودی رحیم بوده باشد، بلکه کار شیطانی بوده که موجودات را فریده تا از مشاهده رنجهای آنها لذت ببرد. داده‌ها به این نکته اشاره می‌کردند و من به این امر عقیده پیدا کردم. شوپنهاور را به لندن می‌فرستند تا در مدرسه شبانه روزی ایگل هاوس واقع در ویمبلدون زبان انگلیسی بیاموزد. لورنس مایر دوستش در جواب نامه او می نویسد متاسفم که اقامتت در انگلیس سبب شده از کل ملت بیزار شوی. به رغم این نفرت شپنهاور تقریباً به طور کامل بر زبان انگلیسی مسلط شد. به طوری که اغلب در هنگام صحبت او را با فردی انگلیسی اشتباه می گرفتند. شپنهاور به فرانسه می روه. او از شهر نیم بازدید میکند همان جایی که حدود 1800 سال قبل مهندسان رومی به کمک کشی آب را از پل بزرگ ژار به شهر منتقل کرده بودند تا آب کافی برای استحمام شهروندان را فراهم کنند شپناور از مشاهده بقایای این کار رومی ها تحت تأثیر قرار نمیگیرد این آثار به سرعت فکر انسان را به هزاران نفری جلب میکند که مدت هاست pousidan مادر شپنهاور از تمایل پسرش به تعمل در باب فلاکت بشری گله و شکایت می کند. 1809 تا 1811 شپنهاور در دانشگاه گوتینگن تحصیل می کند و تصمیم می گیرد فیلسوف شود. زندگی کسب و کاری اندوهناک است. تصمیم گرفتم آن را صرف تعمل درباره خودش کنم. در سفری کوتاه به خارج از شهر دوستش پیشنهاد میکند که حتما با زنان ملاقات کنند. شپنهاور این نقشه را رد میکند و میگوید زندگی آنقدر کوتاه، نامعلوم و زود گذر است که ارزش ندارد با تقلای زیاد خود را به درد سر بیان او در وایمار با مادرش ملاقات میکند. یوهانا شپنهاور با مشهورترین ساکن آن شهر یوهان وولفگانگ فون گوته دوست شده که به طور منظم به دیدار او میرود روید. گوته صحبت کردن با صوفی، خدمتکار یوهانا و عادله خواهر کوچک آرتور را دوست دارد. پس از اولین ملاقات شپنهاور گوته را چنین توصیف می کند. آرام، خوشمشرب، مهربان، دوستانه. متبارک باد، نامش تا ابد گوته می گوید، شپنهاور جوان به نظرم جوان عجیب و جالبی بود. گوته هرگز احساسات آرتور نسبت به خودش را به طور کامل متقابلا پاسخ نمیدهد پس از عظیمت شپنهاور از وایمار گوته بیتی برای او میسراید اگر میخواهی از زندگی لذت بری باید برای جهان ارزش قائل شوی شوپنهاور تحت تأثیر این سرود قرار نمیگیرد و در دفتر یادداشت خود کنار شعر گوته نقل قولی از شانفور را میآورد بهتر است انسانها را همانطوری که هستند بپذیریم به جای اینکه تصویری خیالی از آنها ترسیم کنیم 1814 تا 1815 شپنهاور به درستن می رود و رساله می می‌نویسد در باب ریشه چهارگانه اصل جهت کافی او دوستان اندکی دارد و از مکالماتش چندان انتظاری ندارد گاهی اوقات درست همانطور که دختر بچهی با عروسکش صحبت می کند، با مردان و زنان صحبت می کنم. البته دختر بچه میداند که عروسک حرفش را نمی فهمد، ولی با خودفریبی لذت بخش و خود برای خودش شادی حاصل از ارتباط را می آفریند. او به پای ثابت مهمان ایتالیایی بدل می شود که گوشتهای مورد علاقهش، سلامی ونیزی، ساسیس ریسدار و، جامبان پارما را می کند 1818. کتاب جهان به مسابه اراده و بازنمود را به پاگان میبرد خودش می که این کتاب شاهکار است توضیح می دهد که چرا دوستان زیادی ندارد نابغه به ندرت میتواند تواند خوشمشرب و معاشرتی باشد زیرا کدام یک از مکالمات دو نفره ممکن است واقعا به اندازه تکگویی خودش هوشمندانه و جالب باشد. 1818 تا 1819 برای جشن گرفتن تکمیل کتابش به ایتالیا سفر می کند. او از هنر، طبیعت و آب و هوای ایتالیا لذت می برد. ولی خلق و خویش ناپایدار می ماند. همواره باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که هیچ انسانی هرگز چندان دور نیست از حالتی که بخواهد به سرعت شمشیر یا زهری به دست آورد تا به حیات خود خاتمه دهد. یک تصادف، یک بیماری، یک تغییر ناگوار سرنوشت یا تغییر ناگوار آب و هوا ممکن است به آسانی مخالفان جدی این عقیده را به موافقان آن تبدیل کند. شپنهاور از فلورانس، روم، نابل و ونیز بازدید می و در مهمانی با چندین زن جذاب ملاقات می کند. بسیار به آنها علاقه داشتم البته فقط اگر آنها هم به من علاقه می داشتند. این وازنش به الغای این دیدگاه در وی کمک می کند. فقط عقل مزکر که غریزه جنسی آن را کور کرده می‌تواند جنس ریز نقش دارای شانه های باریک لومبرهای پهن و پاهای کوتاه را جنس لطیف بداند 1819 جهان به مسابه اراده و بازنمود منتشر می شود دویست و سی از آن به فروش می رسد تاریخ هر زندگی تاریخ رنج است فقط اگر می توانستم از این توهم خلاص شوم که نسل آدمهای رزل و نکبت را هم تراز خود بدانم حال و روزم بسیار به بهتر میشد 1820 شپنهاور سعی می‌کند در برلین منصبی دانشگاهی در رشته فلسفه به دست آورد. درس گفتارهایی در باب کل فلسفه یعنی نظریه جوهر جهان و جوهر ذهن بشری ارائه می‌کند که فقط 5 دانشجو دارد. در ساختمان مجاور می‌توان صدای رقیبش هگل را شنید که به 300 نفر درس می‌دهد. شپنهاور فلسفه هگل را ارزیابی می کند. آرای بنیادین آن بیهود ترین توهمات هستند. جهانی واژگون شده، لودگی فلسفی، مزامینش تو ترین و بیمعنی ترین نمایش کلماتی هستند که تاکنون ابلهان با ولع به آن گوش زبارده و نحوه ارائی آن که نفرتانگیزترین و بیمعنی ترین نوع پرت و پلا گفتن است، داد و هوار تیمارستانی ها را به یاد میآورد. آغاز دلزدگی از دنیای اکادمیک. علل القاعده هیچ کس کمتر از مدرس فلسفه، فلسفه را جدی نگرفته. درست همانطور که علل هیچ کسی کمتر از پاپ به مسیحیت عقیده ندارد. 1821 شپنهاور عاشق کارولین مدون خاننده 19 ساله می شود. این رابطه به طور متناوب ده سال به طول می انجامد ولی شپنهاور نمیخواهد ازدواج کند. ازدواج کردن یعنی انجام دادن هر کار ممکنی برای متنفر شدن از یکدیگر با وجود این به چند همسری علاقه دارد. یکی از مزایای بیشمار چند همسری این است که شوهر با خیشاوندان سببی خود رابطه چندان نزدیکی پیدا نمی کن. یعنی همان چیزی که ترس از آن در حال حاضر مانع بسیاری از ازدواج ها می شود چه خوب است که انسان به جای یک مادر زن ده مادر زن داشته باشد 1822 برای دومین بار به ایتالیا مسافرت می کند میلان، فلورانس، فنیز پیش از شروع سفر از دوستش فریدریش آزان می خواهد به دنبال هر گونه ذکری از اسم من در کتاب مجلات، نشریات ادواری ادبی و نظایر آنها بگردد این کار برای اوزان وقتگیر نیست 1825 با ناکامی در حرفه آکادمیک سعی می‌کند مترجم شود ولی ناشران پیشنهادهای او برای ترجمه آثار کانت به انگلیسی و تریسترام رامشندی به آلمانی را رد می‌کنند در نامه‌ای این خواسته غمانگیز خود را مطرح می‌کند که منصبی در جامعه بوجوهایی داشته باشد، گرچه هرگز به چنین مقامی نمی‌رسد. اگر خدای این جهان را فریده، دوست ندارم خدا باشم. فلاکت و مسکنت جهان قلبم را می شکند. خوشبختانه او می در لحظات قمنگیستر نسبت به ارزش خودش احساس امیدوار کننده ای داشته باشد. هرچند وقت یک بار باید بفهمم که در امور زندگی روزمره، ذهن و روح هم مثل تلسکوپی در سالن اپرا یا توپی در شکار خرگوش عمل می کنند 18128 چهل ساله می شود خودش را تسلی می دهد هر آدم لایقی پس از چهل سالگی به سختی می تواند از احساس مردم گریزی در امان بماند 18131 حالا در چهل و سه سالگی در برلین زندگی می کند و دوباره به فکر ازدواج می افتد. توجهش به فلورا وایس جلب می شود دختر سرزنده زیبایی که تازه افده ساله شده است شاپنهاور در یک مهمانی همراه با قایق سواری در تلاش برای مجذوب کردن آن دختر لبخند می زند و خوشه انگور سفید به او تارف می کند بعدها فلورا در دفترچه خاطراتش سر دل باز می گوید. به آنها میلی نداشتم احساس دل به هم خوردگی زیرا شپنهاور پیر آنها را لمس کرده بود بنابراین آنها را به آرامی پشت سرم در آب انداختم شپنهاور با اجل برلین را ترک می کند. زندگی هیچ گونه ارزش ذاتی اسیلی ندارد ولی صرفاً با میل و توهم در حرکت می ماند در آپارتمانی معمولی در فرانکفورت اماین ام شهری با حدود پنجا هزار نفر جمعیت می این شهر را که مرکز بانکداری اروپای قاره‌ای بود چنین این می‌کند. می کند. قوم آبدرائی دهقان معابی که به صورت یک شهر متورم شده اند. از درون بی و نخراشیده خوشک و حقیر دوست ندارم به آنها نزدیک شوم. اکنون نزدیکترین معاشران او چند سگ پودل هستند که به نظر شپنهاور مهربانی و فروتنی دارند که انسانها از آن بی بهره‌اند. مشاهده ی هر حیوانی بلافاصله مرا شاد و قلبم را مسرور می‌سازد. او به این پودلها مهربانی می‌کند و آنها را سر یا آقا خطاب می‌کند و به بهزیستی حیوانات به شدت علاقه‌مند می‌شود. سگ بسیار باهوش، واقعیترین و وفادارترین دوست انسان به دست او به زنجیر کشیده می شود. هرگاه چنان سگی را می بینم ترین همدلی را نسبت به او و ترین نفرت را به اربابش احساس می کنم. با خورسندی به یاد میآورم که چند سال قبل روزنامه تایمز گزارش داده بود که فلان لورد سگ بزرگی را در زنجیر نگه می داشت. روزی آن لورد سرگرم پیاده روی بود که ناگهان فکر کرد برود و سگ را نوازش کند در آن لحظان حیوان بازویش را از بالا تا پایین درید و کاملا هم درست. سگ می‌خواست بگوید تو ارباب من نیستی بلکه ابلیس منی که زندگی کوتاه مرا جهنم کرده ای. امیدوارم همه کسانی که ها را به زنجیر می‌کشند به این روز بیفتند. افتند. شپنهاور روال کاری روزانه منظمی اختیار می کند. صبح سه ساعت می نویسد. یک ساعت فلوت از کارهای رسینی می نوازد، بعد پاپیان سفید میزند و برای نهار به انگلیشر هوف واقع در رس مارکت می رود. او اشته های زیادی دارد و دستمال سفره سفید بزرگی به یقش آویزان می کند. در هنگام غذا خوردن به دیگران بیاعتناست است، ولی گاه و بیگاه در هنگام نوشیدن قهوه با دیگران مشغول صحبت می شود. یکی از آنها او را چنین توصیف می کند. به طرز خندهداری کچخلق ولی در واقع شخصیتی زموخت، بیزرر و مربان فرد دیگری نقل میکند که شپنهاور اغلب به دندانهای بسیار سالمش فخر میفروشد و آن را شاهدی بر برتریش نسبت به دیگران یا به تعبیر خود او برتری بر جانوران دوپای عادی میداند پس از نهار شوپنهاور به کتابخانه باشگاهش انجمن کازینو پناه میبرد و در آنجا روزنامه تایمز می خاند. روزنامه روزنامه‌ای که به نظرش او را به بهترین شکل از مصائب جهان آگاه می‌کند در میانه‌های بعد از ظهر دو ساعت با سگش در سواحل ماین پیاده روی می‌کند و آهسته زیر لب با خود حرف می‌زند شب به اپرا یا تاعتر می رود. در آنجا اغلب از سر و صدای دیر آمدگان، صرف کنندگان و کسانی که پای خود را روی زمین می‌کشند عصبانی می شود. و به مسئولان نامه مینویسد و از آنها میخواهد علیه این افراد تدابیر شدیدی اتخاذ کنند. گرچه آثار سنکا را خانده و او را بسیار می با حکم این فیلسوف رومی درباره سر و صدا موافق نیست. مدت هاست که عقیده دارم مقدار سر و صدایی که فردی میتواند به راحتی تحمل کند با قوای ذهنی او نسبت معکوس دارد. کسی که عادت کرده به جای اینکه درها را با دست ببندد آنها را به هم بکوبد فقط بدرفتار نیست بلکه بی و کوته فکر است فقط وقتی کاملا متمدن میشویم که دیگر کسی حق نداشته باشد تمرکز موجودی متفکر را با سوت زدن، جیغ کشیدن، فریاد بر آوردن، چک‌کشکاری، ترق‌تروق کردن و نظایر آن از بین ببرد 1840 سگ پودل جدیدی میگیرد و اسمش را آتما میگذارد به عنوان ادای احترام به روح جهانی که برحمنها به آن عقیده دارند مجزوب ادیان شرقی به طور عام و آین برحمنی به طور خاص می شود هر شب چند صفحه از اوپانیشادها را می خاند را شریفترین و ترین مردم میخواند. و وقتی زن نظافتچی مارگارتا اشنپ به دستورهایش مبنی بر عدم گردگیری تصویر بودا در هنگام مطالعه توجه نمی‌کند او را تهدید به اخراج می‌کند اوقات روزفسونی را در تنهایی می‌گذراند مادرش نگران اوست. دو ماه در اتاقت بوده ای بدون اینکه یک نفر را ببینی این خوب نیست پسرم و مرا غمگین می‌کند انسان نمی‌تواند و نباید خود را این گونه منزوی کند ساعات زیادی از روز را می‌خوابد اگر زندگی و هستی شادی آفرین بود در آن صورت همه با بیمیلی به حالت ناهشیار خواب نزدیک میشدند و با شادی دوباره از خواب برمیخواستند ولی درست عکس این امر مزداق دارد زیرا همه با اشتیاق زیاد به خواب میروند و با بیمیلی دوباره از خواب برمیخیزند او با مقایسه خودش با دوتن از متفکران مورد علاقش زیاد خوابیدنش را توجیه می کند. هرچه انسانها پیش رفته تر باشند و هرچه مغزشان فعال تر باشد بیشتر به خواب نیاز دارند. منتنی نقل می که همیشه خواب سنگینی داشته و بخش زیادی از عمرش را در خواب بوده و در سن زیاد هم هشت تا نه ساعت به طور مداوم می خابیدن. همچنین نقل کردند که دکارت زیاد می خوابیده است. شپنهاور به خانه جدیدی در فرانکفورت اسباب کشی می کند. پلاک هفته خیابان شونوسیخت. به معنی منظره زیبا. نزدیک رود ماین. مقدر است که بقیه عمرش را در این خیابان بماند. گرچه در 1859 پس از مشاجره با صاحب خانهش بر سر سگش، به پلاک شانزده نقل مکان می کند. 1844 چاپ دوم و جلد دیگری از جهان به مسابه اراده و بازنمود را منتشر می کند. در مقدمه چنین میگوید. اثر اکنون کاملم را نه به معاصران یا هموطنانم بلکه به بشریت می سپارم. مطمئن هستم که نزد بشریت بی ارزش نخواهد بود حتی اگر این ارزش بسیار دیر شناخته شود یعنی همان سرنوشت محتومی که امر نیک در هر شکلی دارد کمتر از 300 نسخه به فروش میرسد بزرگترین لذت ما این است که ما را بستایند ولی ستایندگان حتی اگر انگیزهای برای این کار داشته باشند چندان مایل نیستند که ستایش خود را ابراز کنند و بنابراین این انسان کسی است که توانسته خالسان خودش را به مهم نیست چگونه. 1850 آتما می میرد. شپنهاور پودلی قهوهی به نام بوتس می که به پودل محبوبش بدل می شود. وقتی هنگی نظامی از کنار خانش عبور می کند، شپنهاور در میانه صحبت می ایستد و سندلی کنار پنجره می گذارد تا بوتس بتواند به بیرون نگاه کند. بچه های محله این سگ را شپنهاور جوان می خاند. 1851 مجموعه ای از رساله ها و کلمات قصار را به نام زیل ها و حاشیه ها منتشر می کنند. در کمال حیرت خود نویسنده این کتاب پرفروش می شود 1853 شهرت او سراسر اروپا را در می نوردد. به قول او کمدی شهرت دانشگاه های بن و ینا درس گفتارهایی درباره فلسفه شپنهاور ارائه می طرفدارانش به اون نامه می نویسند. زنی از سیلسیا شعر پرمعنی طولانی برایش میفرستد. مردی از بوهم برایش می نویسد که هر روز تاج گلی روی تصویر او می گذارد. واکنش شپنهاور این است. پس از اینکه زندگی طولانی را در گمنامی و بی سپری کردید، در آخر عمر با تبل و به سراغ شما میآیند و فکر می کنند این کار چقدر مهم است. ولی در عین حال رضایت خاطر هم دارد. اگر کسی که ذهن بزرگی دارد، سراب در حال جزر و مد افکار عمومی یعنی افکار ناشی از ذهنهای کوچک را ستاری راهنمای خود بگیرد، آیا هیچگاه می تواند به هدفش نائل شود و اثری جاودانی و ابدی بیافری نه؟ فرانکفورتی هایی که ذهن فلسفی دارند، پودل ها را با احترام می خرند. 1859. در حالی که شهرت سبب افسایش توجه زنان به شپنهاور می شود، دیدگاه هایش آنها ملایم تر می گردد. به جای اینکه آنها را مناسب پرستاری و معلمی ابتدائی ترین دوران کودکی ما بداند، درست به این علت که خودشان کودک معاب، احمق و کوتاه و در یک کلام در سراسر زندگی خود کودکانی بزرگ هستند اکنون آنها را قادر به فداکاری و کسب بسیرت می میدانند. پیکر تراشی جذاب و یکی از ستایشگران فلسفه شپنهاور الیزابت نی از نسل مارشال همسر ناپلئون در ماه اکتبر به فرانکفورت می رود و یک ماه برای ساختن مجسمه نیمتنی شپنهاور در آپارتمان او می ماند او تمام روز در خانم راه می رود، وقتی از نهار برمیگردم با یکدیگر قهوه می خوریم. با هم روی کناپه می نشینیم و احساس می کنم که انگار ازدواج کرده هم. هزار و هشت بیماری روز افزون نشان می دهد که پایان کار او نزدیک است. می توانم این فکر را تحمل کنم که به زودی بدنم را خواهند خورد. ولی این فکر که اساتید فلسفه به فلسفه‌ام ناخونک میزنند، بدنم را به رعشه میاندازد. در انتهای سپتامبر، پس از پیاد روی در کنار سواحل ماین، به خانه برمیگردد. از تنگی نفس شکایت می کند و می میرد. در حالی که هنوز عقیده دارد، هستی انسان باید نوعی اشتباه باشد. چون بود زندگی فیلسوفی که میتواند به ترزی بی همتا به قلب ما کمک کند